استفاده از شیاف روزی رو باطل میکند یا نه؟ توضیح پایان سهر استفاده از شیاف روزی رو باطل بله حالا تو پیامه ها اینقدر در پاکش میشه که شیاف شکرنده روزه نیست این اشتباه است. حالا اینکه نظری باید از علماء گفته، اما اما اینکه محل اشکال هست داخل صحیح بخاری حدیث داریم که اصا من ما دخلا اصا من ما دخلا روزه باطل می شود چیزهایی که داخل براوان قول حضرت عبدالله ابن عباس هست و عبدالله ابن مسعود هم فران الفطر من ما دخل روزه می شکنه چیزی داخل براوان حالا داخل از کل راهایی که به میده واصل می شود اینها شکنندی هستند پس شیاف ای که از مسیرهایی هست که منتحی منتهی میشه به همون جا